ملسه شونزه همه قوائد فقسیاسن نه آزر هزار و بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الله و نبی محمد و علا احل و معصومین سی محبتیتنا روحی و این بحث رو من تکمیل کنم خدمت شما بحث این پس روایات اهم و مهم رو چند مورد ما شناسایی کرد یه بحث بسیار مهم اینه که ما یک مسالهی داریم و یک مفاسدی معمولا بحث اهم و مهم مربوط به مساله و مفاسده شوا در درس دیگه من بعضی از محتوا رو کمی تقریب کردم برای ذهن دوستان ما یه اشاراتی می‌کنیم ولو خیلی فشرده چند تا محور بحث داریم یک این که احکام در مقام جل می توانیم بگیم تا بر اساس حسن و قبح ذاتی جعل شدن بر اساس نگاه عدلیه و به ت... و یه تعبیر نزدیک به این هم از جهت دیگه این که احکام طبق مساله و مفاسد نفس الامر جعل شدند این مساله و مفاسد به چی مربوطن به متعلق یعنی فرمودن که نماز بخوان در نماز خواندن مصلحت و مقصده هست قصد در خود اون فعله در متعلق حکم, حکم وجوب است متعلقش چیه نماز خواندن وجوب سلات اون سلات مسلات و مفصده نفس الامریه داره یا حسن و ذاتی داره خب یه مسلاتی هم در خود جل میتوانی ممکن در نظر بگیریم مسلات جل چیه اینکه یه دعایی در شما درست کنه یه مسلات دیگه چیه اینکه شما رو حل بده به سمت برای ایسال به مساله مربوطه به اون متعلق متعلق حکم تو ما با مسلحت و مقصد چه کار داریم؟ یه بحث قاعده هم داریم که قاعده مسلحت چیه؟ این که الولایت و یه بحث این بحث پرش به اونجا هم میخوره حالا اون بحث جدا که ما بر تأمین مسلحت بکنیم اجرا و اعمال ولایت طبق مسلحت باشه اون یه بحث دیگه است ما کجا نیاز به اهم و مهم داریم در بحث تزاهم؟ تضاهم بین چی؟ مساله و مفاسد یا تضاهم بین احکام در نگاه شیعی معمولا ما تضاهم بین احکام رو محل بحث قرار میدیم میگیم حکم واجب این واجب با واجب دیگر تضاهم پیدا کرده کدام اهم است در قدم اول باید بریم ملاک های در واقع استنباطی رو به نصف بیاریم. تا گیر گیر نمیوردیم اون وقت مثلا حال اسباب اهم بود خود اینا بعد اثبات بشه پس ما یه جایی بین حکم وجوب و وجوب تضاحم پیدا می کنیم و باید چکار کنیم در واقع تقدیم اهم ده موارد تقدیم اهم چیه اه یکیش تضاحم پس این همه تقدیم اهم ما میشه بس تضاحم تزاهوم. تضاحم واجب با واجب تضاحم حرام با حرام تضاحم حرام با واجب صدا رفت صدا رفت ببخشید این دست ما میخوره به دکمه قطع میشه موارد تقدیم اهم بر مهم چیه تضاحم واجب با واجب تضاحم حرام با حرام تضاحم حرام با واجب خب مصطبات و مکروهات رو معمولا علماء ما جز تضاهم حساب نمیکنن واجب و مصطب دیگه خب معلوم واجب اونقدر واضحه که دیگه اسم تضاهم هم براش نمیارن و حرام و مکرو اصلا اسم این تضاهم هم نمیذارن اما بین واجب و واجب حرام و حرام واجب و حرام تضاهم میتوانه باشه تعبیر دیگه چیه؟ تضاهم مسالح با مسالح که توابید هم پوشانه برال واجبات یه مساله ای دارن تزاهم مساله و مساله مفاسد و مفاسد و یکی هم چیه مساله و مفاسد خب حالا در اینجا ما قواعد فرعی داریم قاعده اصلی اصلی چیه؟ تقدیم اهمه این یه تعبیر عامیه بگیم قاعده اصلی یا قاعده عام خب شما می توانید انتظار داشته باشید ببینید در لیست قواعد ما تنوع قواعد فقهیه یه سری قواعد مربوط به همین اهم و مهمه با تقسیمی که من عرض کردم شما بفرمایید که این بعضی از این موارد به کدام یک از اینا برمیگرده میگه در اول مفسده اولا من جلب المصلحه در اول مقصده اولام جلب المسلح این از کدام سنخه ذیل کدام موارده من انایتم به اینه که شما این تقسیم سگانه که دو تا تقسیم هم داریم نزدیک به همه همپوشان هم مساله و مساله مفاسد و مفاسد, مساله و مفاسد اینا همپوشانه با اون دستبندی اقبله در فضای شیعی خیلی چون که دنبال مساله نمیرند معمولت اون لسان حکمی رو پی میگیرن علاوه اینکه اینم مورد اشاره قرار می ولی با اون همپوشان طرف میشه اما اهل سنت یه مقداری چون که روایتشون کمه بیشتر میان سراغ خود مساله علاوه اینکه اون اح احکام هم ذکر میکنن خب اینها رو شما اگر مثلا بخوید بگید در المفسده اولا جلب المصلحه این قاعده به کدام یک از این موارد عمو مهم میخوره به واجب و واجب که نمیخوره یه طرفش الان مقصده است یه طرفش مصلحته یا منفعته در قول این یه طرف میشه مسلم مقصده من جلب المسلحه یا منفعت این میشه اون دسته سبون مساله و مقصد یا بگیم حرام و واجب خب و چندین قاعدی دیگه هم داریم تقدیم افسد بر فاسد به زیل کدام میام؟ بین مفاسد و مفاسده یا بین یا برای حرام و حرامه پس به اون دو دسته دیگه مربوط نیست اگر گفته بشه که مثلا یوتحمل الفساد یا المذر رتول مثلا آمم اینجا به چی میخوره و یختفرول مقصدتول خواسته مثلا این به مقصد مقصده میخوره میگه مقصده بزرگ تحمل میشه به جای مقصده سقیر فسیقه های مختلف ما از مساله و مفاسد داریم که به اینجا کمک میکنه اگر شما این دستبندی رو در نظر بگیرید میتوانید یک نظم ذهنی داشته باشید و خوبه بعضی کلاس ها که ما فرصتی بیشتری داشتیم یا بعضی کارگاه ها، می آمدیم رساله رو مطرح می کردیم می دوستان بزرگوار بیان در فقرات مختلف بیان مواردی که آمده رو تفکیر کنم ببینیم زیل کدام قرار می گیره الان من یک موردی رو اون کنم موارد سیاسی شما یک موردی رو دارید به اسم تطرست تطرست یعنی چی؟ یعنی این که در زمان جنگ دشمن یه گروه از مسلمانان رو میگیره سپر خودش میکنه میخواه که شما به دشمن حمله نکنید این مسلمانان رو بلاگردان خودش میکنه که اگر شما بخواید حمله کنید باید اول اونا کشته بشن تا به دشمن ضربه بزنید به این میگن تطرس و علموه شیوسانی فیل جمله اجازه دادن طبیعتا در جایی که خیلی اهمییت داشته باشه اینجا از باب چیه اینو تحلیل کنیم اگر کشتن مسلم مقصده داره و حرامه کشتن دشمن مصلحت دارد و واجب این میشه ذیل چی از مصادیق مفسده و تضاهم مصلحت و مفسده است یا تضاهم واجب و حرام اینا من تاکید بکنم که مفهوم تزاهم مال کجاست مال عالم و مقام امتصال یعنی دو حکم با هم تنافی ندارند در عالم جن اگر دو حکم بخوان تنافی در مقام جعل پیدا بکنن دو میگیم تعارض دو روایت که میگیم متعارض شدن یعنی این که ما اگه دو تا رو بخوایم قبول کنیم معنیش این خواهد بود لازمش این خواهد بود که دو تا حکم کاملا مقابل هم یا بعضا مقابل هم در عالم جل تنافی پیدا بکنیم میشه, تن... میشه تعارض دو تا دلیل اما دو حکمی که به هم ربطی ندارند اینا به خودی خود واجبند حرامند اما در مقام امتصال اینا به هم گره خوردند یک مثال نماز زور و عصد بر شما واجبه قوم واجبیه مستقل نماز آیات هم بر شما واجبه حالا اول وقت میتوانید این رو اونو اون اما آخر وقت فراموش کردید جامانده یا مثلا میگید فرص بیم گرفت ماه گرفت مثلا اگر چیزی رخ به دزجهت است سماوی و خلاصه آسمانی امکانش برقرار است دم غروب باشه فرض شما وقت نداری یا زلزله بیا یا مورد دیگه نماز آیات واجب بشه وقت ندارید این رو میخونید یا اون رو دو واجبه اند پس این میشه تضاهم مسلحت و مسلحت مثلعت... یا تضاهم دوهاگیم البته علمای اهل سنتی که محبول مسلحت مسلحت و مقصد مقصده یا مسلحت مقصده در نظر خیلی جاها ها میرن به عالم جهل هم میپردازن بله اونجا هم میتوانیم تضاهم تصویر کنیم اون میشه تضاهم ملاکی به تعبیر مرحوم ناینی اون مال عالم دیگه ایه که خود ولد اون رو چیکار کار کنه به امتصال ما بر نمیگرده حالا اونها بعضی موقع برای استنباط حکم و ممکن از این استفاده کنن ما به اون کار نداریم فعلا بله بر بله تحلیل های اصولی و فقی ما ممکن استفاده کنیم در زمن فقه و اصول اما چقدر میشه از اون حکم استنباط کرد به این راحتی نیست بلا ما احل سنت بیشتر میپردوزن اما ما تضاهم که میگیم تضاهم امتصالیه نه تضاهم ملافی بحثش کمی شبیه میشه خب شما مسادیق مختلفی دارید اینجا باید ببینید چه مواردی بحث میشه خب پس مفهوم تضاهم معلوم شد مواردشم معلوم شد خب اینجا معنای پس تضاحم چیه این که دو حکم در مقام امتثال با هم تضاحم پیدا کنن تنافی پیدا کنن مثال رایج این که گفته میشه که کسی داره غرق میشه نجات دادن اون غریق حکمیست واجب بعد شما برای نجات دادن او مجبورید از یک زمینی که مال دیگران است بدون اجازه اونها قاسبانه عبور کنید حتی یه جای ممکنه ضرری هم به اون کشتکار رو بزنید یا دیوار رو نرخبار کنید برید تا اون غریق رو نجات بدید این وجود انغاز غریق انغاز غریق واجب است غصب اموال انوال دیگران و زمین دیگران حرام الان تظام بین حرام و واجب شد پس یه قاعده خاص خودش رو میخوا. واجب و واجب یه قاعده خاص خودش رو میخوا، تقدیم اوجب مثلا. حرام و حرام کدامه اگر شما ناگزیر باشید چهاره جز ارتکاب حرام ندارید اونی که مثلا اقل و حرمتنه یه قایده دیگه شد اون واجب و واجب سنخش فرق میکنه مثلا شما دارید رانندگی میکنید در لب در یک باره مشکل میشید یا آدمی اونجا واسده یا شما باید بزنید مثلا پشت تا گوسفند رو له و لورده کنید یا باید بکشید اون طرف بزنید یا آدم رو بکشید خب طبیعتا کشت شدن گوزفندان مهمتر مفصدش کمتره تا کشته شدن آدم یا اینکه که سخترش کنیم اگر اون طرف بچرخید میزنید یه نفر رو میکشید اگر به سمت چپ بچرخید میفتید خودتون تو دره حفظ جان خودتون مقدمه یا حفظ جان غیر الان دو آدم داریم خب یا مثلا میخواد نجات غریق بکنید دو تا غریق دارید یکیش بچه هست یکیش بزرگ یا یکیش آلم مشتهده یکیش آدم معمولیه تزاهام بینه دو تا مستاق از یک حکم حکم انقاض غریق دو مستاق داره این خب اهم مهم پس باید اهم مهم بس مسادق متنقهی داره کار خیلی خوب و مناسب اینه که بزرگواران از الان تمرین کنن برای دوران مرجعیت که البته دست شما نیست مرجعیت ولی اگه خواستید خلاصه دست و پاوزند هیچ اشکال ظاهری نداره ولی واقعا اشکال داره خلاصه اینکه در به قصد خلاصه ریاست کار کنید زحمات شما بر باد میره لذا قربتن لله کار کنید اما فرض کنید فرض محال خواستید تمرین مرجعیت کنید و با نیت خالص میگه آقا من فقط علمیت هم بره والا حالا اگه مرجع شدم اشکال نداره یکی از کارهای پیشنهادی اینه که شما بیاید کل فقه رو کل رساله رو بردارید اولا یه قسمت هایی که ببینید چند جا احکام تضاحمی رو آوردند اونو در بیارید بعد برای تمرین مرجعیت تو همه ابواب بیاید تظ می رو که به ذهن مبارک میرسه لیست کنید و اتفاقا این بیش از تمرین و بازیزی اتفان برای تم این بحث سبک زندگی خیلی اهمیت داره ما الان سبک زندگی مون براس رایت عمن و مهم نیست حالا با تتصام ومون مستبات هم میشه بگیم ما که مفهوم تظم اونجا به کار نمیبره من مثال رایج میگم شما فرصتی میکن ادتی میکن با خووشو و خصووعشا الله خدا رو خلاصه ناظر می‌بینید جلو خدا استادت احساس خلاصه حضور به شما دست داد میگی هزار بعد از نماز مغرب نافله بخونم چه نافله می‌خونید آیا دو رکعت هم بیشتر وقت ندارید نماز نافله روزانه و یومیه رو می‌خونید که دو تا دو بعد از نماز مغرب یا نافله ی... یا چیز دیگه می‌خونید قفیله می‌خونید خب ها یه دیگه کدامش سبابش بیشتر کدام اهمه این یه ملاکی میخوا در نمازید میگه آقا این برده خدا خلاصه آمده دم در داره زنی میزنه طلبکاره نمازتون رو کنید بر طلبش رو بدید یا ادامه بدید یا وایسی نماز شروع کنید تلبکار بیشاره وایسی پشت در در همه قسمت ها تضاهم بین اجزا در سالات. تضاهم بین اجزا و شروط یه دی دیگه تضاهم حقوق قیل از احکام تکلیفی تضاهم حق این درقا تضاهم حق مونه هرچه ممکنه زیل وجوب دادن حق در نظر بگیرید حالا با اون کار نداشته باشیم ولی میخواد باید اصلش این که بینیم کدام حق اهمیتش بیشتره خب پس یک معنای تضاهم داریم که توضیح دادیم خیلی اجمالی. یه بحث هم اشاره کنم بحث تزاهم که در واقع اهم و مهم هست کجای فقه اصول بحث میشه؟ فقه پراکنده هست خیلی هم کم متاسفانه. چرا یه ذا تزاهم حقوق یه جاهای بیشتر میشه پیدا کنید یا مصداق مصداق پراکنده بدون نظم خاص. و در همه و متاسفانه بحث نشده در اصول جای ت... شناسایی بحث تضاهم کجاست؟ هست اولا کنم که از قبل پس این رو بگیم که مخ... در واقع م... محل بحث از تضاهم در اصول قبلش این نکته ارز کنم که هم مفهوم این سابقه بحث تضاهم سابقه مفهوم تضاهم در فضای شیعی، در فضای سنی، مفهوم تضاهم به معنای لغوی به کار میره، خیلی جا مثل تعارض به کار میرن، میخوان بگن تعارض دو دلیل ممکن تضاهم هم بگن، تضاهم و تعارض یکیه بگیرن، یا تضاهم در مقام امتصال مفهوم تعارض هم به کار میگیرن، پس معنای خیلی تفکیک شده نیست بین این دوتا در فضای سنی، و یه جوری تضاهم هم جز مصادیق تهاروز در واقع حساب میشه در قدمای شیعه هم همینطور بوده قدمای حتی متاخرین از زمان مرحوم صاحب جواهر یه مقداری این پررنگ میشه و به ویژه شیخ و بعد مرحوم نائینی و به ویژه مرحوم شایی صدر در استقلاعی که من کردم در اساتی ده ساهم جواهر من چیزی پیدا نکردم من اصطلاحا حالا در بعضی نرم افزارو که خیلی گشتم و اینها در برخی کتب می‌کنه باز موارد دیگه باشه پید... پیدا کردم من مصاحب جواهر من هفت مورد یا نه مورد پیدا کردم تزامم به معنای تزام در مقام امتثال به کار گرفته شده غیر از جایی که ممکنه تعابیر عامطری هم به کار برده باشه معنای لغوی کار ندارم تزام در مقام امتثال مرحوم شیخ امصاری که دیگه خیلی پررنگش می‌کنه و این رو در مقام امتصال به کار میبره در کنار مقام مفهوم تعارض و مرحوم ناینی هم اینو بالو پر میده و بعد هم شایید سر خیلی بالو پر میده خب بزرگواران کجا بحث میکنن بعضی بزرگواران در کتاب اصول در بحث زد به تناسب بحث ترتب که شاید که مرحوم ناینی هم ترتب رو اینا رو رنگ میکنه سوابق تاریخی هم داره بعضی بزرگواران در بحث ترتب بعضی بزرگ برو هم در بحث تعدل و تراجی امتدای تعدل و تراجی میخوان میگن بگن فرق تزاهم با تاروزی چیه؟ می بطرح میکنم مفهومش بحث میشه تفاوتش بحث میشه و بعد نکته بسیار اساسی مرجحاته. مرجحات مرجحات تزاهم خب مرجحات رو یه مقداری مرحومه این نکات ظریف زیاد داره پس در بحث اهم و مهم ما اصلی ترین کاری که نیاز داریم مرجحات, مرجحات عام که بگیم رنگ اصولی بیشتر دارند و مرجحات خاص خب مرحوم نائینی یه فقره از اون موارد رو در یه پاراگاراف جمع کردن گفتن از امور عام بر مثلا چیزایی که منافع عام داره بر خاص مقدمه یه چار پنج مورد اما خیلی به اون صورت بحث نکرد اما مرجحاتی که در دل مباحث اصولی بحث میشه و مرحوم در واقع نائینی خیلی اون رو بحث داده این مهمه که باید به اونها من اسم اینا رو میذارم مرجحات حکمی یه مقداری این اهل سنت مرجحات بیشتر بیشتره مقداری بحث میکنن یه مقداری به هم نزدیک میشه خب پس ما یه جوری تضاهم احکام رو گفتیم تضاهم حقوق که ممکنی بیدی جوری تضاهم احکام با احکام هم برگرده ولی میتونی مستقل به اونم هست تزاحم ملاکی رو هم تفکیک کرده از تزاحم امتصالی که بحث ما تزاحم امتثالیه نکته دیگه که اینجا دادن قبل از مرجعات من بگم ست انهای کلی تزاحم رو مرحوم نائینی سه چیزی چیز رو بردند تزاحم جهات و مختزیات که همون بگیم تزاحم در واقع ملاکی میشه و تضاهم عقابی یه تعبیری هم تضاهم اسبابم دارن اونم حالا فعلا کار نداریم تز... مثل بیع موکل و وکیل تضاهم حکمی هم که برای اشاره کردم تضاهم مقتضی هم که یه جور در واقع تضاهم ملاکی به اونها مساله و مفاصل در میگرده تضاهم جهات بگیم تضاهم مختزیات و تضاهم جهات که به اون مسئله و مخواسد در اشیا برمیگرده که کدامش قلبه داره ممکنه در یک موردی مثلت باشه مفسده یکیش قلب باشه اون بحث مستقلیه. خب اینجا ما تضاهم به طور زمنی مواردی هم گفتیم یه سری تکالف مستقل تضاهم قیوت و واجبات غیر اینا هم میشه بگیم تضاهم جز و جز تضاهم شرط و شرط جز و شر مرهم نا... نرا... ناینی اینا رو دارن یه جاهایی و بعض بزرگران پراکنده داریم یه جای ممکنه تضاهم احکام واقعی ظاهری اینا هم داشته باشیم فعلا با اونها کار نداریم خب ما یه بحث مرجحات عام می داریم در اصول که مرحوم نا... ناینی سعی کرد اونها رو برجسته کنه و اونها رو یه مقداری خلاصه به بحث گذاشتن و خدمت شما ارز کنیم اونها رو در اصول بحث میکنن که معمولاً بعد از مرحوم نائینی یه مقدار بعضی مواردش هم به نقد گذاشته شد ابی در یکی از موارد موارد مهمش همین تقدیم اهم بر مهم این یه موردش حالا من اینا رو که میخوام عرض کنم پنج مورد رو مرحوم ناینی آوردند که چهارمین مورد میشه همین تقدیم اهم بر مهم بعضی موارد دیگه در واقع اینها میشه مرججهات مشهور تو ذهن مبارکه بزرگان طبیعتاً اهم و مهم برجسته است اما مرحوم نائینی این رو به عنوان یک مرجعه اونم در مرجعه اول دانستان ضمن بحث آوردند که اولین مورد تقدیم مزيق بر موسعه یه ترتیبی داره تقدیم مزیق احکام مزیق و مبسط البته در مثالا که بردن بعض جا مناقشه شده مثلا همون بحث نماز آیات و نماز ظهر اصری که عقب افتاده اون مطرح میکنن اون نماز از و نماز آیات بعد بعضی ها خواستن بگن اقا این که دیگه این که تضاون نیست اون دم آخرشو باید در نظر بگه یه نخت خاص خواست خودشون دارن پس از اون مرجحات پنج کنه تقدیم مزایاک و موسسه اولی مورد مورد دوم تقدیم حکم اینجا ما دو حکم داریم مورد دوم که بخوایم بگیم حکم داریم یه مفهوم قدرت شرعی داریم یه قدرت عقلی داریم میفرمایم اونجایی که حکم مشروط به قدرت شرعی نیست بر حکمی که مشروط به قدرت شرعی است مقدم میشه، پس حکم غیر مشروط به قدرت شرعی مقدم میشه، بر حکمی که به قدرت شرعی مشروطه، قدرت شرعی مثل چیه؟ مثل فرض کن قدرت در حاجی من استطا الی سبیلا چون که شرط خودش گفته اسم شده قدرت جرب اما یه واجبی دارید شارع براش قید نذاشته قید قدرت نذاشته بله عقلا همه تکالیف مشروط به چی هستن به داشتن قدرته. شما قدرت شما خود زدن شده چهجوری خودتون اتصال کنید اما خیلی احکام حکم میشه مشروط به قدرت نمیکنه شما باید بری خودت چون که میشه قدرت عقلی شما خودت قدرت پیدا کنی اگه میتوانی. اگه الان نداری زود از شما ساقط نمیشه در حج همین که قدرت بر شما نبود ساقط میشه چون من استطاع الهه نگفته برو تحصیل قدرت کن اما در موارد دیگه چون مطلق گفته قدرتش عقلی میشه اگه قدرت نداری برو قدرت پیدا کن دیگه عقل میفهمید و باید قدرت پیدا کنی مهمی که واجب گردنه پس کدار برو گفتن مقدم میشه اونی که مشروط به قدرت شرعین نیست. حکم غیر مشروط به قدرت شرعی بر حکم مشروط به قدرت شرعی غیر مشروط بر مشروط مقدم میشه این دو بومی مئیار. پس اول مزیق و موسط اول ترتیب داره بعد غیر مشروط به قدرت شرعی بر مشروطش سومین بومین مورد رو که مرحومه ناینی دارن ما دو نوع حکم داریم یه سری احکام بدل دارن بعضیشون بدل ندارن فرمودن اونهایی که بدل ندارن براشون شهر بدل حساب در نظر نگرفته اونها مقدم میشن بر احکامی بر خوردار از بدل بی بدل ها بر بدلدار مقدم میشن مورد چهارم اسبق زمانی حکمی که زمانش مقدمه بر اونی که متأخره مقدم میشه تا حالا اون بدل داره بی بدل نشه مثلا شما میشه براش قضا بیاری قضاش بکنیم یه حکمی که دیگه از بین بره دیگه قضا نداره بدل نداره بس اونی که بدل نداره کلا از بین میره اون منفعتش از بین میره کلا میگه بر اونی که میشه این جایگزینه او آورد یه عدا قضایی داره بر اون بدل داره مقدمش کنی مثلا فرض کن یکیش کفاره یه کفارهی که بدل داره این نشد یه مساق یه بدلی برش داریم فس اون بی بدله بر بدلدار. دار چهار اصبق زمانیه بر متأخر بر سلات شما الان قدرت نداریم که کل نماز رو ایستاده داده بخانیم اینجا من چه کار کرد؟ آیا مثلا ما روکت اول رو نشسته بخوانیم بعد روکت حالا چون نشستیم همینجا بخوانیم بعد بلندشیم روکت دوم میگه نه الان قدرتت صرف اون بسمت اول بکن اون حکم اول بکن اول نماز رو بخوان حالا این تضاهم دو جز داره میشه البته این چون که اسبقه یا دوتا واجب گردنتون هست مثلا دوتا نماز روز هست. دو دوتا روزه قدرت رو اختیار داره که نه روز دوم بخوری یا روز اول بخوری میگه نه فعلا این گردن رو گرفته حالا بخوان بعدن حالا خدا کریمه یا قدرت نخواهی داشت ازت از ساقت میشه یا قدرت خواهی پیدا کرد فعلا اینو بعد انجام بدی اگه یه قدرت داری پس یه نکته حساسی هم بگیم تفاهم مال کجاست جایی که یه قدرت بیشتر نداری یه قدرت نداری که دو تا قریقه نجات بدید دو تا نماز رو با هم بخونید دو تا روزه رو, رو بگیرید یه قدرت داری توانت محدوده دوتا نماز رو نمیشه بخانی. آیا آیاتو یومیه رو فقط میتونی خب تفاهم مال این مال دیگه مورد دیگه تردیمه اهم بر مهمه خب این موارد مال کجا هست مال مواردیه که تکالیف استقلالی. خب بعضی هم بزرگواران خیلی از موارد رو خلاصه زیل اهم مهم بردن مرحوم آقا زیا مثلا خب مرحوم آقا زیا خیلی جا نازره به منو نراقی هم بحث میکنه در اصولش از بقی زمانی رو نیورده بعد مرحوم ناینی خودشون دارن اون ترتیبی که گفتم داماد امیت گفتن اند ترجیح در فبادول سول جلد یک صفحه ۳۸۵ پن اند ترجیح بال امیت این و بعد فقد المرجحات سابقیا من البدلیه بدلیه و لا و اشتراط بال قدرت و عدم اشتراط و غیر زار من المرجحات سابقا و اند فقد جمعی المرجحات یا کنولهق هو و تخلیص اگه هیچ کدام از اینا نبود اما مهم نشد و سایر اونها اینجا جای تاخیره بعد میفرمان تمام هاذا تمام الكلام فی تزامن الحكم فی تکلیف استقلالیم اول این موارد شد مرحوم آقا دین الدین عراقی در نهایت الافکار جلد 4 صفحه 132 این موارد رو اینجوری آوردن و اما مرججات و باب تزاوی فی امورون منها اقوالیت الملائک ملائکی که اقوا باشه چون اون اهم و مهم تعبیر میشه میتونه برای اون باشه فیقدم الاقوام اقوا آن علا غیری میشه اهم اقوام ملائک من و منها با اذاکان ادهم مشروطم بالقدرت شریه دون الاخر فیقدم ملک یکون مشروطم در الشریع علی مشروط به و اینکان کان اقوام حتی اگر اقوام لاکن باشه این مقدمه درسته اول اقوام لاکن رو بردن. ولی کدام مقدمه این مشروط به قدرت شرعی و غیر مشروط اگر اینجا بخوام توضیح بدیم در واقع اگر این باشه میشه اینجوری بگیم بگیم اصلا موضوع رو منتفی میکنه نوبت اقوام لاکن نمیرسه ممکنه این تعبیانی داشته باشیم و من ها ماذار عهد و مو مزیقن و الاخر بوستن فاین فا المزیقن مقدم به حکم العقل الا بوست جمعا بین الفرزین پس این ملاک رو دارن و من ها ما اذا کان لعهد ما بدلون استراری فاینا فا یقدم به حکم العقل مالا بدل الا و الا ما لهل بدل له خب اینها رو هم باز تکمیل زیاد داره این بعض پس یه مقدماتی عرض کردیم ان شاء تکمله بحث در جلسه بعدی الحمد لله رب العالمين و الله على سید النبي نو عبد القاسم محمد وعلى اهل بيت طاهر المعصومين سيما بقيه الله في الارض روحي بروح العالمين الله الفدا.